حکایت طایفه دزدان عرب بر سر کوهی نشسته بودند و منفذ کاروان بسته و رعیت بلدان از مکاید ایشان مرعوب و لشکر سلطان مغلوب به حکمان که ملازی منی از قلی کوهی گرفته بودند و ملجع و معوای خود ساخته مدبران ممالک آن طرف در دفع مذرت ایشان مشاورت همین کردند که اگر این طایفه هم بر این نسق روزگاری مداومت نمایند، مقاومت ممتنه گردد. درختی که اکنون گرفته است پای به نیروی مردی براید زجای. وگر همچنان روزگاری، هلی، به گردونش از بیخ بر نکسلی، سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. سخن بر این مقرر شد که یکی را به تجسس ایشان برگماشتند و فرصت نگاه می داشتند. تا وقتی که بر سر قومی رانده بودند و مقام خالی مانده، تنی چند مردان واقعه دیده جنگ آزموده را بفرستادند تا در شعب جبل پنهان شدند. شبانگاه که دزدان باز آمدند، سفر کرده و غارت آورده، سلاح از تن بگشادند، و رخت و قنیمت بنهادند، نخستین دشمنی که بر سر ایشان تاختن آورد، خواب بود، چندان که پاسی از شب درگذشت، قرص خورشید در سیاهی شد، یونوسن در دهان ماهی شد، مردان دراور از کمین به جستند، و دست یکان یکان بر کتف. به و بامدادان به درگاه ملک حاضر آوردند همه را به کشتن اشارت فرمود اتفاقا در آن میان جوانی بود میوه اونفوان شبابش نورسیده و سبزه گلستان ازارش نو دمیده یکی از وزرا پای تخت ملک را بوسه داد و روی شفاعت بر زمین نهاد و گفت این پسر هنوز از باغ زندگانی بر نخورده و از ریعان جوانی تمتع نیافته توقع به کرم و اخلاق خداوندی است که به بخشیدن خون او بر بند منت نهد ملک روی از این سخن در هم کشید و موافق رای بلندش نیامد و گفت پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است تربیت اهل را چون گردکان بر گنبد است نسل فساد ایشان منقطع کردن اولاتر است و بیخ تبار ایشان برآوردند که آتش نشاندن و اخگر گذاشتن و افعی کشتن و بچه نگه داشتن کار خردمندان نیست. ابر اگر آب زندگی بارد، هرگز از شاخ بید بر نخوری. با فرومای روزگار مبر که از نی بوریا شکر نخوری. وزیر این سخن بشنید، تو و کرهن بپسندی. و بر خسن رای ملک آفرین خواند و گفت آنچه خداوند دام ملکهو فرمود عین حقیقت است که اگر در صحبت آن بدان تربیت یافتی طبیعت ایشان گرفتی و یکی از ایشان شدی اما بنده امیدوار است که در صحبت صالحان تربیت پذیرد و خوری خیردمندان گیرد که هنوز طفل است و سیرت بقی و اناد در نهاد او متمکن نشده و در خبر است کل مغلودن یورد و الفطرت و ابواهو یو حفدانهی و یونسرانهی و یومجسانهی. با بدان یار گشت همسر لود، خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب کف، روزی چند، پی نیکان گرفت و مردم شد، این بگفت و طایفه از ندمای ملک با وی به شواعت یار شدند، تا ملک از سر خونه اون در گذشت و گفت، بخشیدم، اگر چه مسرحت ندیدم، دانی که چه گفت زال با رستم گرد، دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمورد. دیدیم بسی که آب سرچشمه خورد، چون بیش آمد شطور و بار ببرد. فلجمله پسر را به ناز و نعمت برآوردند و استادان به تربیت او نسب کردند تا حسن خطاب و رد جواب و سایر آداب خدمت ملوکش در و در نظر همگان پسندیده آمد باری وزیر از شمایل او در حضرت ملک شمه ای میگفت که تربیت عاقلان در او اثر کرده است و جهل قدیم از جبلت او به در برده، ملک را تبسم آمد و گفت، عاقبت گرگ زاد گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود، سالی دو بر این برآمد آمد، طایفه اوباش محلت به دو پیوستند و عقد موافقت بستند، تا به وقت فرصت، وزیر و هر دو پسرش را بکشت و نعمت بیخیاس برداشت و در مغاره دزدان به جای پدر بنشست و آسی شد ملک دست تهیور به دندان گزیدن گرفت و گفت شمشیر نیم کزابن بد چون کند کسی ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله رو گد و در شور بوم خس زمین شوره سنبل بر در او تخم و عمل زای مگردن، نکوگی با بدان کردن چنان است که بد کردن به جای نیک مردان.